دوستان بسیاری از غیر ایمانداران میگن که نمیخوان به کلیسا برن چون کلیسا پر از آدمای ریاکاره. بله، بسیاری از کلیسا همینطور هستن و همینطور که در درس امروز خواهیم دید، حتی در زمانهای قدیم هم کسانی بودند که تظاهر به روحانی بودن میکردن، اما این فقط ظاهر کار بود و ربطی به واقعیت نداشت. ما باید خودمون رو آزمایش کنیم. آیا ما حقیقتاً روحانی هستیم؟ در حالی که به زندگی اولین پادشاه اسرائیل شاول نگاه می‌کنیم، به دقت گوش کنین و از زندگی اون عبرت بگیرین این شما و این معلم ما به درس دیگری از کلام قدوس و الهام شده از طرف خداوند خوش آمدید این دوره بررسی کل کتاب مقدس هست و ضمن این بررسی یک بار دیگه به کتاب اول سمایل می‌پردازیم. همونطور که در جلسه قبل دیدیم علاوه بر بررسی مفهوم پادشاهی خدا در اول سموئیل ما باید به نمونه‌ها و هشدارها در این کتاب تاریخی عهد قدیم توجه کنیم در هش باب اول کتاب سموئیل زندگی سموئیل رو به عنوان سرمشقی بزرگ می‌بینیم بعد در باب نهم تا پانزدهم هم همین کتاب ما با هشدار مهیبی مواجه می‌شیم می‌بینیم که زندگی شاول عبرت بزرگی برای ما هست همینطور که در جلسه قبل گفتم شاول شخصیتی بحث برانگیزه. بسیاری شک دارند که شاول حتی روحانی بوده باشه شاول هم مانند بلعام در کتاب اعداد هرگز مرد روحانی نبوده او فقط به این تظاهر می کرد شاول یقینا این ظرفیت رو داشت که نه تنها یک مرد روحانی باشه بلکه میتونست رهبری بزرگ هم باشه وقتی مردم روحانی میشند، وقتی اونها مسح روح القدس رو تجربه میکنند، همونطور که شاول هم تجربه کرد این اونها رو یک آدم مصنوعی نمی کنه. این به این معنی نیست که اونها دیگه اراده آزاد ندارند شاول قادر بود که تصمیم بگیره و او تصمیم غلط گرفت او دو بار از خدا ناعتاعتی کرد و به عنوان کاهن جای سمایل رو گرفت که این اشتباه بود بعد وقتی که به شاول گفته شده که قوم امالیق رو نابود کنه او باز ناعتاعتی کرده و این دوم داوری خدا رو در زندگی او آورد. سموئیل که شاول رو به عنوان اولین پادشاه اسرائیل مس کرده بود، از جانب خدا فرمان یافت که شاول را از سلطنت خل کنه و بعد خدا به سموئیل گفت که داوود رو به عنوان دومین پادشاه اسرائیل مز کنه. داود بهترین پادشاهی بود که اسرائیل به خودش دیده بود. در این صفحات ملاحظه می کنید که بعد از دومین ناعتاعتی شاول زندگی او تبدیل به عبرتی ترسناک شد. اگر با روانشناسی ناهنجاری آشنا باشید متوجه خواهید شد که شاول از جمله کسانی بود که امروزه به اون افراد مبتلا به جنون ادواری یا جنون جوانی میگیم یکی از مشخصه های جنون جوانی در هم ریختگی شخصیت هست. به نظر میرسه این مشخصه در زندگی شاول وجود داشته شما میتونید شاول رو در اول سموئل ببینید که به نظر میرسه شخصیت و زندگی او از هم پاشیده و همه چیز برای او از دست رفته اما در همین بابها ها که از باب شانزده شروع میشه شما مردی به نام داوود رو میبینید وقتی با داوود مواجه میشید میبینید که او فقط پسرکی چوپان بوده اما با این حال او کاملا در اوج بود در اول سموئیل شما مرگ شاول رو میبینید و همزمان در نهایت همه چیز دست به دست هم میده و به نفع داوود تمام میشه اگر بخواید که یک مطالعه بیوگرافی مهیج داشته باشید زندگی داوود و شاول رو با همدیگه مقایسه کنید داوود که نمونه بزرگ هست تبدیل به عبرتی میشه بسیاری از شخصیت های کتاب مقدس هم نمونه های بزرگی هستند و هم عبرت بزرگی اما زندگی شاول تقریبا همهاش عبرت است به جنون شاول توجه کنید یکی از مشخصه های چیزی که ما بهش جنون میگیم اینه که شخص فکر میکنه همه برای او توتعه میکنن ملاحظه کنید که چطور شاول همه رو متهم میکنه کنه که بر علیه او توتعه می کنند و در صدد قتل او هستند. واضحه که چنین توتعی وجود نداشته. داوود در صدد قتل شاول نبوده اما شاول عقیده داشت که داوود در پی فرصت برای قتل او هست. شاول دیوانوار به داوود حسادت می کرد چون که سموئیل نبی به شاول گفته بود که خدا مردی پیدا کرده که بهتر از شاوله. مردی که به دنبال قلب خدا بود و تمامی اراده خدا را به جا می آورد. به نظر میرسید که مشخصه بارز شاول این بود، نطاعتیسمیل به شاول گفته بود که نطاعتی بدتر از جادوگری یا حتی بودپستی و خدا اطاعت شاول رو بر قربانی کردن او ترجیح میداد. نقطه مقابل شخصیت شاول داوود بود. مشخصه بارزی که داوود در زمانی که به پادشاهی اسرائیل فراخونده شد داشت این بود که مردی بود به دنبال قلب خدا، و کسی بود که اراده خدا را به کمال انجام میداد. خدا به راحتی نمیتونه از طریق شخصی که از او اطاعت نمیکنه کار کنه. خدا میتونه از طریق شخصی کار کنه که از او اطاعت میکنه. به این دلیل بود که خدا در موقعیتی نبود که با شاول کار کنه، اما میتونه با داوود کار کنه. به اعتقاد من بعد از اینکه جلال خدا از زندگی شاول زایل شد، زندگی او تبدیل به عبرتی ترسناک شد. زمانی که خدا کلمه ایخابود رو در زندگی او نوشت ها سوال میکنند که آیا این اتفاق امروز هم میتونه بیفته من بر این باورم که تفاوتی هست بین نحوه قرار گرفتن روح القدس بر افراد در عهد قدیم و روشی که روح القدس در عهد جدید در این سوی صلیب بر مردم قرار میگیره. امروز با اون موقع خیلی فرق میکنه. مثلا وقتی داوود گناه میکرد اینطور دعا میکرد. روح قدوس را رو از من بر آشکار بود که روح خدا از شاول جدا شده بود بسیاری بر این اقیده که بعد از پنتیکاست خدا با انسان به اون نحو عمل ننمود او مثل مورد شمشون بر مردم نیامد و اونا رو ترک نکرد. ما این وعده رو در عهد جدید میشنویم که خدا میگه من هرگز تو را ترک و رها نخواهم کرد. آیات زیادی در اثبات این حقیقت هستند که وقتی ما چیزی رو که عهد جدید به اون تولد تازه میگه تجربه میکنیم اون وقت خدا میتونه کار روحانیش رو در ما شروع کنه. فیلیپیان یک شیش میگه یقین دارم آنکه که کاری نیکو در شما آغاز کرد آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. و فیلیپیان دو سیزده میگه زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت آنچه را خوشنودش میسازد در شما پدید میآورد. این نشون میده که باید دو بود برای کار روح القدس وجود داشته باشه. یکی کار روح القدس در ما و دیگری مسح روح القدس بر ما. به تفاوت تعریفی که در کتاب مقدس از کار روح القدس و خدمت و معجزات او در ما شرط داده شده و تقویت و مس روح القدس وقتی که روح القدس بر ما قرار می گیره، توجه کنید گواه کاری که روح القدس در ما میکنه کنه چیزی که بهش ثمرات روح القدس می گیم کار روح القدس در ما در عهد جدید تولد تازه خوانده شده حالا شاول رو به حال خودش رها میکنیم و به سراغ شخصیت زیبای داوود میریم همونطوری که قبلا هم گفتیم نیمی از اول سموئیل و تمام دوم سموئیل در مورد داوود با ما صحبت میکنه وقتی که سموئیل فرستاده شد که داوود رو معصب کنه به خانه یسا در بیت فرستاده شد او یک شبان بود و هفت پسر به غیر از داوود داشت وقتی که سموئیل به خانه یسا رفت نمیدونست که کدام یک از اون پسران باید به عنوان شاه معصب بشه وقتی که یکی از پسران پیش آورده شد خدا چیز خیلی مهمی به سموئیل گفت. در آیه هفت باب شانزده اول سمویل خدا به سمویل گفته به چهرهش و بلندی قامتش نظر من ما زیرا او را رد کردم. چونکه خداوند مثل انسان نمی زیرا که انسان به ظاهر مینگرد و خداوند به دل می نگرد. به عبارتی به نیت می نگرد. یسا پسر دیگرش ابیناداب را خانده او را از حضور سموئیل گذرانید و او گفت خداوند این را نیز برنگزیده است یسی شماه را گذرانید و او گفت خداوند این را نیز برنگزیده است یسا هفت پسر خود را از حضور صموئیل گذرانید و صموئیل به یسا گفت خداوند اینها را برنگزیده است و به او گفت آیا پسرانت تمام شده اند؟ گفت کوچکتر هنوز باقیست است و اینک او گله را می چراند و صموئیل به یسا گفت بفرست و او را بیاور آیا این برای شما آشنا نیست کوچکترین و ضعیفترین و جوانترین سموئیل به او گفت تا او به اینجا نیاید نخواهیم نشست پس فرستاده او را آورد و او سرخ رو و نیکوچش و خوشمنظر بود خداوند گفت برخواسته او را مسح کن زیرا که همین است پس سموئیل عقه‌ی روغن را گرفته او را در میان برادرانش مسح نمود و از آن روز به بعد روح خداوند بر داوود مستولی شد و سموئیل برخواسته به رامه رفت این مسه دومین پادشاه اسرائیل بود بزرگترین پادشاهی که اسرائیل به خودش دیده بود این مدتها پیش از زمانی بود که داوود پادشاه بشه این اینجا که اول سموئل پیغامی داره وقتی که ما در اول سموئل باب 16 تا 31 با داوود روبرو میشیم شرحی از دانشکده خدا یا آماده سازی خدا رو می خونیم خدا میخواست که داوود شاه بشه اما داوود باید برای پادشاهی آماده میشد بنابراین داوود انواع تجربیات رو پشت سر گذاشت تمامی اون تجربیات داوود رو در مسیر اعتماد قرار داد خدا داشت داوود رو برای خدمتی که میخواست آماده میکرد چطور خدا داوود رو برای کاری که میخواست بکنه آماده میکرد؟ کاربرد حقیقی این رو خواهید دید اگر شما خدا رو دوست دارید و بر حسب اراده او خوانده شده اید هر تجربه ای که دارید شما رو برای کاری آماده میکنه که خدا شما را برای انجام اون در آینده فرا خونده تمامی چیزها با هم برای خیریت در کار خواهند بود اگر ما خدا را دوست داشته باشیم و بر حسب اراده او فراخوانده بشیم وقتی ما او را دوست داریم و بر حسب نقش او فراخوانده شدیم توجه داشته باشید که این حقیقته، این تحقق پیدا میکنه هر تجربه که شما دارید و هر روزی که زندگی می کنید، برای آماده شدن شما در روز دیگری هست که زندگی خواهید کرد وقتی به این مرد داوود نگاه میکنید می بینید که او یقینا مردی بزرگ بوده به نظر میرسه که داوود همه چیز رو با هم داشته یک بار از یک استاد الهیات شنیدم که می میگفت مرد بزرگی که خوب نباشه به اندازه مرد کوچکی که خوب هست ارزش نداره به عبارت دیگه یک مرد خوب کوچک بهتر از مرد بزرگی که خوب نباشه اما این استاد این رو هم می میگفت که یک مرد بزرگ خوب از یک مرد کوچک خوب بهتره این تقریبا من منو کنار میذاره چون من نه خوب بودم نه بزرگ حال من طبق نظر او داوود رو دیدم که مردی بزرگ و خوب هست داوود خوب از بر برومد اینجا شرحی از داوود هست یکی از اولین چیزهایی که در اول سمویل میخونید اینه مردی اسرائیلی گفته اینک پسر یسای بیتلهیمی را دیدم که به نواختن ماهر و صاحب شجاعت و مردی جنگ آزموده و فسی زبان و شخص نیکوسورت است. و خداوند با وی می باشد این یعنی مرد خوب می تونیم به این صورت بگیم او نوازنده ماهر چنگ بود خوشتیب بود شجاع و قوی بود او جنگجوی بزرگی بود مرد خدا و در داوری قابل اطمینان بود وقتی عطایایی رو که خدا به مرد جوان عطا کرده بفهمید متوجه میشید که چرا داوود از نظر جسمانی مردی تنومند و مرد نظامی بزرگی بود داوود قبل از اینکه پادشاه بشه خودش رو به عنوان یک مرد جنگی نشون میده. داوود هنرمند بزرگی بود. او به ما میگه که بعد از اینکه پادشاه شد، کاهنین رو به بخشهایی تقسیم کرد. در اول تواریخ باب 23 گفته شده که داوود هزار کاهن داشت که کاری جز نواختن آلات موسیقی که خود داوود برای پرستش خداوند میساخت نداشتند. داوود نیمی از مزامیر رو نوشته. مزامیر کتاب سرودهای قوم خداست. این نشون میده که داوود سراینده بزرگی هم بوده. شما معمولاً این دو مشخصه رو یک جا در یک مرد نمیبینید. اما داوود هر دو رو داشت. یک جنگاور بزرگ و یک هنرمند بزرگ. و البته داوود پادشاه بزرگی هم بود، چون بسیار باهوش بود، و از همه مهمترین بود که او یکی از مردان بزرگ خدا بود. یادتونه که مشخصی شماره شما داوود این بود. او مردی بود به دنبال قلب خود خدا که تمامی اراده خدا رو به جا می آورد من میدونم که دو آیت ال مودی که خادم حیرت انگیزی بود مرد با سوادی نبود بر تا قبل از خدمت بیلی گراهام دی ال مودی برای بسیاری از مردم رو در رو موعظه میکرد که هیچ کس به اندازه او موعظه نکرده بود مودی به انگلستان رفت به آکسفورد و به کمبریج رفت و اونها مفتون سخنان او شده بودند او حتی گرامرش خوب نبود خدمت دیل مودی فقط میتونه با مس روح القدس توجیه بشه. روح القدس راز خدمت مودی بود. یه روز مودی شنید که مردی میگه دنیا باید ببینه که خدا با مردی که تماما تسلیم او هست چیکار میتونه بکنه. وقتی مودی این حرفها رو شنید گفت با فیض خدا من اون مرد خواهم بود. این شرح خدمت عظیمی بود که مودی داشت. برحال میدونم که وقتی او مرد آخرین کلامشیم این بود. جهان هنوز هم باید بدونه که خدا با مردی که تماما تسلیم او هست چیکار میتونه بکنه این راز روحانی دی بود این راز روحانی داوود هم بود داوود مردی بود که تماما تسلیم خدا بود و میخواست اراده خدا رو به کمال انجام بده داوود به عنوان مثال و سرمشق بزرگی از کاری که خدا میتونه با مردی که تماما تسلیم او هست بکنه در صفحات کتاب مقدس جا گرفته وقتی که به داوود نگاه می کنید می بینید که کارهای مختلفی که انجام داد الگویی از عطایایی هست که او داشت. اولا می بینید که او یک موسیقیدان بود و می بینیم که اولین بار به این وسیله فرصت حضور در نزد پادشاه رو به دست آورد. وقتی امروز این ها رو می شماریم داستان داوود برای دولتمندان به درد نخور هست. داوود پسرک چوپانی بود که پادشاه شد. او از گله پدرش مراقبت می کرد. روزی خرسی به گله حمله کرد. بسیاری از نوجوانان امروزی میتونن اینجوری به این نگاه کنند پدرم گوسفندان زیادی داره اما پسران زیادی نداره آیا باید بذارم اون خرس چند تا از گوسفندای پدرم رو ببره اون خرس بعد از مدتی سیر میشه او فقط چند تاش رو میخوره لازم نیست زندگیمو به خاطر چند تا گوسفند از دست بدم اما داوود اینجوری فکر نکرد داوود فکر کرد که اونها گوسفندان پدرم هستند و من مسئول مراقبت از اونها هستم خدا به من امکان خواهد داد که با اون خرس بجنگم پس داوود با دست خالی به خرس حمله کرد و خرص رو کشت چون که خدا با او بود و یک بار دیگه هم شیری اومد تا گوسفندان رو ببره داوود باز هم همون طور عمل کرد و از خدا قوت یافت که با دست خالی شیر رو بکشه گویی خداوند به پایین نگاه کرد و اون نوجوان چوپان رو دید و گفت به این مرد جوان با ایمان نگاه کن او حاضر زندگیش رو به خاطر گوسفندان پدرش به خطر بندازه فکر میکنم بهتر او رو شاه بکنم. اگر این پسر نسبت به گوسفندان پدرش چنین احساسی داره، نسبت به گوسفندان من هم همون احساس را خواهد داشت. جالبه که مشاهده میکنیم که بسیاری از رهبران در کتاب مقدس مانند موسا و داوود شبان بودند. به عنوان شبان، اونا اصول رهبری رو یاد گرفتن و تبدیل به رهبرانی بزرگ شدند. داوود چیزای زیادی از شبانی یاد گرفت. اما اولین فرصت زندگیش به خاطر این بود که موسیقی بلد بود. یادم یه بار به انگلستان رفتم و در مورد محل تولد پدر بزرگم تحقیق کردم تا بفهمم چرا پدر بزرگم از انگلستان به امریکا مهاجرت کرده. پدربزرگم در انگلستان در معدن زغال سنگ کار می و بعد از اون به پنسیلوانیا مهاجرت کرده. و دلیل مهاجرتش این بوده که در اون دوره که رادیوها تازه تأسیس می شدن نیاز به کسانی داشتند که در کار موسیقی ماهر باشند و پدربزرگ من چون در دسته موزیک معدنچیان ترومپت می نواخته به خاطر این مهارتش به امریکا دعوت شده و در پنسیلوانیا ساکن شده. اگه پدر پدربزرگم به امریکا نمیومد، من در اینجا متولد نمیشدم. داوود هم اولین فرصت زندگیش رو به خاطر مهارتش در نواختن چنگ به دست آورد. وقتی که وضعیت روحی شاول در هم میریخت و افسرده میشد، یا جنون جوانی به او دست میداد یا بیحسله می داوود با موسیقی نواختن شاهر از حالت جنون خارج میکرد امروزه به این کار موسیقی تراپی می خاصی هستند که وقتی شما افکارتون پریشونه به آرامش شما کمک می کنند. محقق بزرگ کتاب مقدس دکتر مارتین لوید جونز به واعظین میگفت که اولین کاری که او هر روز انجام میده اینه که به قطعی از متزارد گوش میکنه. ما انتظار داشتیم که او بگه در اول هر روز سه ساعت دعا میکنه یکی از واعظین جوان پرسید چرا به باخ گوش نمیکنید و دکتر جونز پاسخ داد موسیقی باخ برای پرستش خارق است اما موتسارت افکار شما را آروم میکنه به موتسارت گوش کنید این شما را از نظر روحی شفا میده او عقیده داشت که موسیقی موتسارت درمان هست من به موسیقی علاقه دارم و معتقدم که این حقیقت دارد وقتی که به موتسارت گوش می کنم واقعا تاثیر شفابخش اون رو می بینم اگه شما مشکلاتی داشته باشید و به استراوینسکی گوش کنید احتمالا میرید و خودتون رو دار میزنید واضحه که در زمان داوود هم موسیقی تأثیر شفابخشی داشته وقتی داوود چنگ می نواخت احتمالاً مزامیری رو که نوشته بود میخوند و به وسیله اون سرودها داوود شاه رو از حالت جنون خارج میکرد وقتی که به زندگی داوود نگاه میکنید وقتی به سهم داوود در پرستش ها فکر میکنید میبینید اگرچه این موسی بود که به ما یاد داد که خدا رو چطور بپرستیم اما داوود کسی بود که موسیقی رو وارد پرستشگاه کرد این داوود بود که چهار هزار نفر از لاویان رو قرار داده بود که آلات موسیقی ساخته دستش را برای پرستش خدا بنوازند به این مطلب در باب 23 اول تواریخ اشاره شده این داوود بود که گفت میتونید سرودخوانان به حضور خدا بیایید خدمت موسیقی موجزه بزرگی هست. آیا توجه کردید که وقتی کسی مثل بیلیگراهام میلیون ها دلار رو در برنامه های تلویزیونی برای نهستش هزینه می کنه، نیمی از اون برنامه تلویزیونی به موزیک اختصاص یافته و به این دلیل که نیمی از پیام به وسیله موسیقی فرستاده میشه. خدا توسط خدمت موسیقی صحبت می کنه. به اعتقاد من داوود موسیقی و کلام خدا رو یک یکجا جمع کرد و اونها را تا ابد پیوند داد. بود مهم دیگر زندگی داوود جنگاوری او بود بسیاری از مردم اولین بار در کتاب مقدس زمانی با داوود مواجه میشن که داستان رویارویی او با جولیات رو میشنونن من شیفته داستان جولیات و داوود هستم بسیاری از ما این داستان رو در کانون شادی یاد گرفتیم آیا دقت کردید که داوود وقتی برای جولیات رجز میخونه به او چی میگه داوود به جولیات میگه تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من می اما من به اسم یهوه و سبایود خدای لشکرهای اسرائیل که او را به ننگ ای نزد تو میآیم. و خداوند امروز تو را به دست من تسلیم خواهد کرد و تو را زده سر تو را از تند جدا خواهم کرد و لاشه های لشکر فلسطینیان را امروز به مرغان هوا و درندگان زمین خواهم داد تا تمامی زمین بدانند که در اسرائیل خدایی هست و تمامی این جماعت خواهند دانست که خداوند به شمشیر و نیزه خلاصی نمیدهد زیرا جنگ از آن خداوند است و او شما را به دست ما خواهد داد. اینها کلمات شگفتانگیزی بود که از دهان مرد جوانی خارج می شد که در مقابل قولی عی استاده بود. احتمالا این داستان یادتون هست لشگر اسرائیل و فلسطین در مقابل هم سفارایی کرده بودند اما تصمیم گرفته بودند که تکلیف جنگ در نبردی تن روشن بشه. جولیات قول فلسطینی هر روز صبح به میدان می آمد و اسرائیلیان رو به تمسخر می گرفت. به اونها دشنام میداد و بیحرمتی حرمتی میکرد. داوود برای بردن غذا برای برادرانش به اونجا فرستاده شده بود. اون روز صبح وقتی جولیات طبق معمول به میدان آمد داوود هم اونجا بود. داوود از چیزی که اون قول فلسطینی میگفت وحشت زده شد چون که او خدا رو مسخره میکرد. داوود از تجربیات گذشتهش میدونست که خدای او میتونه خیرش و شیر رو به قتل برسونه داوود پس از سخنان زیاد این طور گفت این فلسطینی نامختون کی است که لشکر‌های خدای حی را به ننگ آورده؟ یک نفر باید حق این فلسطینی رو کف دستش بذاره او به خدا کفر میگه این فلسطینی نامختون کیه که جرئت میکنه خدا رو مسخره کنه داوود باعث خشم برادرانش شد چون همه اونها از جنگیدن با این قول وحشت داشتن. داوود در همان شرایط از خودش سوالی پرسید الان باید چی کار بکنم؟ چه دلیلی داشت؟ آیا دلیل رو فراموش کردید؟ دلیلش خدا بود و جنگ جنگ خداوند بود. این جمله ی بزرگ داوود هست. او میدونست دونست که جنگ از آن خداوند هست. معنیش این بود که من نیستم بلکه خدا می جنگه و او با منه. من نمیتونم اما او میتونه و او با منه. داوود به این ایمان داشت. داوود به میدان رفت و با کشتن جلیات این رو ثابت کرد. وقتی او به اون قول حمله میکرد و اون چیزها رو به او میگفت شاه و سردار لشکر تماشا میکردند. شاه رو به سردار لشکرش ابنعیر کرد و پرسید ای ابنعیر این جوان پسر کیست؟ است ابنعیر گفت به جان تو قسم که نمیدانم. پادشاه گفت بپرس که این جوان پسر کیست؟ و ابنعیر رفت که تحقیق کنه که او پسر کیست؟ اما وقتی داوود قول رو کشت و سر او رو به حضور پادشاه آورد و به او تقدیم کرد ابنیر هنوز برنگشته بود به محض اینکه که داود به حضور پادشاه رسید پادشاه از او پرسیده جوان تو پسر کیستی؟ داوود گفت پسر بندعت یسای بیتلحمی هستم سلیمان گفته که والدین برای فرزندان مانند کمان برای تیر هستند میزان پرتاب و مسیری که تیر میره بستگی به کمانی داره که از اون پرتاب میشه چیزی که سلیمان شرح میداد این حقیقت بود که بچه ها به هر سمت و مسافتی که در دنیا میرند بستگی به خانه‌ای داره که از اون خانه به دنیا پرتاب شدند. وقتی که پادشاه و سردار اون روز به اون صحنه نگاه میکردن شاول پادشاه واقعا یک چنین چیزی میگفت عجب تیر زیبایی اما باید کمانی رو که این تیر از اون پرتاب شده ببینم من می‌خوام پدری رو که پسری مثل داوود به بار آورده ببینم اون پدر یسا فقط گوسفان پرورش نمیداد. او پسرانی مانند داوود هم پرورش میداد. داوود سرداری بزرگ شد. به عنوان یک سردار هم تأثیر عظیمی بر مردانش داشت. بعضیها این عطیه رو دارند که بر دیگران تأثیر بذاره. یا این عطیه که رهبر بشد و داوود یقیناً این عطیه رو داشت. یکی از داستان‌های موردالقی من که نفوذ داوود رو بر مردم نشون میده در کتاب سموئیل آمده. و در تواریخ هم تکرار شده ما میخونیم که فلسطینی‌ها شهر بیت لحم زادگاه داوود رو تصخیت کردند یک روز وقتی داوود و مردانش به یک غار پناه آورده بودند داوود میگه برای نوشیدن یک جرعه آب بیت لحم حاضرم همه چیزم رو بدم و سه از مردان شجاع داوود با به خطر انداختن جانشون میرن و از چاهی در بیت لحم آب میارن و داوود بدون اینکه اون آب رو بنوشه اون رو بر روی زمین می‌ریزه و بعد میگه من شایسته نیستم که این آب رو بخورم چون شما به خاطر این آب زندگیتون رو به خطر انداختید آیا داوود رهبر اون مردان بوده؟ رهبر به کسی گفته میشه که پیروانی داره. با توجه به این تعبیر داوود یقینا رهبر بوده. وقتی که زندگی داوود رو ملاحظه میکنید به رابطه داود داوود با یوناتان پسر شاول توجه کنید، من فکر میکنم این یکی از زیباترین نمونه های دوستی در ادبیات تاریخی اون دوره محسوب میشه. وقتی داوود شنید که یوناتان کشته شده اینطور گفت ای برادر من یوناتان برای تو دلتنگ شدم برای من بسیار نازنین بودی محبت تو با من عجیبتر از محبت زنان بود امروز مردان خیلی زیادی هستند که یقینا نمیتونن به چشمان مرد دیگری نگاه کنند و بگن تو رو دوست دارم شاید به این دلیل باشه که میترسن متهم به همجنس‌گرایی شوند دوستی بین دو مرد یا بین دو زن دوستی زیبایی. دوستی و محبتی که داوود و یوناتان نسبت به هم داشتند مثال خوبی هست. خدا قلب‌های اونها رو به زیبایی به هم پیوند داده بود. بنا تجربیات من وقتی خدا چیزهایی رو در این زندگی طراحی می‌کنه، شریج سعی می‌کنه ما رو از اون چه که قصد خدا هست بترسونه. خدا میخواد که ما دوستی‌های عمیقی با هم داشته باشیم. دوستی که داوود با یوناتان و مردانش داشت مثال خوبی هست. داوود را همینطور به عنوان یک پناهنده می‌بینیم. زندگی داوود به عنوان یک پناهنده دوره‌ای بود که او را برای خدمتی بزرگ در آینده آماده می‌کرد. بسیاری از مزامیر داوود در زمان پناهندگی او نوشته شده. در دوم سموئیل باب هفت شما مطلبی درباره پادشاهی ابدی داوود می‌خوانید. به طور خلاصه وقتی اول سموئیل رو می‌خونید، بر روی این دو مطلب مهم تمرکز کنید. اول بر مفهوم پادشاهی خدا تمرکز کنید. که یکی از بزرگترین حقایق کتاب اول سموئیل هست و بعد بر شخصیت سموئیل و داوود تمرکز کنید. سموئیل سرمشق بزرگی هست و بعد بر زندگی شاول تمرکز کنید چون زندگی او هم عبرت بزرگی هست. مخصوصاً بر شخصیت داوود در نیمی دوم اول سموئیل و سراسر دوم سموئیل تمرکز کنید. داوود یک نمونه بود چون که او مردی بود به دنبال قلب خداوند و تمامی اراده خدا رو به جا می آورد. همه ما باید به دنبال دل خداوند باشیم و مشتاق باشیم که اراده او رو به جا بیاریم. اغلب میشنوید که معلم ما میگه مردم به دو دسته تقسیم میشن. حالا شما از کدوم دسته هستین؟ دعای ما اینه که این درس ها شما را از خطرات داشتن زندگی مانند شاول آگاه کنه. زندگی کسانی که ظاهرا اعلام میکنند مسیحیان ولی هیچ حقیقتی در روابطشون با خدای زنده وجود نداره شما رو تشویق میکنیم که مانند داوود باشید مردان و زنانی با دلی خداجو و مشتاق برای انجام اراده خدا تا برنامه بعدی باشد که فیض و تشویق خدا رو تجربه کنین که هر روزه با وفاداری از او پیروی کنید